عصر که از صحرا برگشتند، موسرخه را جلو خانه باباعلی پیدا کردند که زنها و بچه ها دورش را گرفته بودند و زمینی و هویج و شلغم و یونجه ریخته بودند جلوش که با ولع زیاد میبلید کتخدا جلوتر رفت و گفت کیا واردش بیرون؟ ننه خانم گفت هیچ کس نه بیرون، خودش آمده بیرون اسلام گفت چه جوری خودش آمده بیرون؟ ما که پاچو بسته بودیم زنها کنار رفتند. اسلام رفت جلو و نگاه کرد. تناب پاره به پای موسرخه بود. گرهی که پسر مشتی سفر زده بود مثل خلخال روی مچ پایش افتاده بود و بقیه تناب مانند مار چند زده زیر رانش جمع شده بود. اسلام تناب را گرفت و کشید. موسرخه با دهان پر برگشت و نگاه کرد. کت خدا خم شد و گفت چجوری تناب پاره کردی؟ موسرخه چیزی نگفت، هرچرا که تو دهنش بود بل اید و دوتا هویج دیگر هم برداشت. کت خدا گفت، چه بکنیم؟ موسرخه چیزی نگفت، مردها رفتند و جمع شدند جلو خانه اسلام. اسلام گفت، اینم که نشد، یه فکر دیگه بکنین. پسر مشتی سفر گفت، فکر دیگه فایده نداره. من همان روز اول گفتم، اون وقت لازم بود که کلکشو میکندیم. خدای خدا گفت یعنی میگی بکشیمش پسر مسی سفر گفت نه دیگه حالا دیگه لازم نیست بکشیمش به بهتره ببریم اوवलش کنیم صحرا مشتی بابا گفت برمیگرده خیلی زودتر از من و تو برمیگرده پسر مسی سفر گفت چارش راحته میبریم و می کنیم طرفهای سیدآباد یا خاتون آباد یا هزوان بزرگ نمیذاره که برگرده بیاد ناچار میره تو یکی از این آبادیها اسلام گفت بد فکری نیست. کس خدا گفت که این کار رو میکنی؟ پسر مشی سفر گفت همین حالا معطلم هم نمیشیم. مردها بلند شدند. حاشیه قرمز مغرب داشت پنهان میشد که چند نفر رفتند و موسرخه را آوردند. اسلام هم رفت و گاری را آورد. عبدالله و پسر مشی سفر موسرخه را برداشتند و گذاشتند توی گاری. حویچها و خورد نانها را هم ریختند جلوش. اسلام نشست جای سورچی، مردهای دیگر هم سوار شدند و راه افتادند اسماعیل گفت کاش یه فانوس هم بر می داشتیم کت خدا گفت نه تاریکی بهتره بهتر کسی ما رو نبینه اسلام گفت دو آبادی دیگه که این بچه رو نمی شناسن عبدالله گفت اگه هم نشناسن که خودش میگه مال کجاست کت خدا گفت مگه خوردن مجال میده که حرف بزنه اسلام گفت مصرخه حیف شد خیلی عیف شد، چقدر به درد بیل میخورد، یا تان هست که؟ اسمایل گفت، آره، مثل بزرگترها بود پسر مشی سفر گفت، دیگه تمام شده، فکرشو نکنین، مثل اینکه نبوده یا زمان قهدی مرده و رفته کس خدا گفت، همه حیف میشن، همه نفله میشن توی سهره گفتادند، دیگر کسی حرف نزد ماه باد کرده و کبود از طرف مشرق بالا آمد. دوتا گاری از خاتون آباد می رفتن به طرف میشو. هر دو گاری پر بود از سیب زمینی و هویج و بسته های بزرگ. از جلوی بیلی ها که گذشتند بوی نان برشته تمام صحرا را پر کرد. گاری در بیاهه ایستاد اصلاب و کت خدا و مشتی بابا و اسماعیل و پسر مشتی سفر موسرخ را آوردند پایین و بردن توی تاریکی. سیداباد خواب بود و یلی ها آرام آرام رفتند و رسیدند به یون جزار سیداباد. اسمایل توبره پری را که دستش بود خالی کرد روی زمین. موسرخ نشست و مشغول خوردن شد و ها روی نوک پا برگشتند. اسلام نشست جای سورچی. مردها آهسته و بیسدا سوار شدند راه که افتادند گریه موسرخه تمام بیابان را پر کرد سیدابادی ها موسرخه را توی خرمند پیدا کردند که نشسته بود و ساغاهای گندم را میبرید اول به خیالشان رسید که جانور غریبهای توی ده آمده است نزدیک رفتند موسرخه را دیدند، با تنابی که به پایش گره خورده بود، ساقه ها را می و پیش می رفت. حلقه زدند و تماشا کردند. سید اول گفت، از کجا آمده؟ سید دوم گفت، مال سید نیست، از آبادی دیگه آمده. سید اول گفت، میشنسیش؟ سیدابادی ها نزدیکتر رفتند و با دقت نگاه کردند هیچ کس موسرخه را نشناخت زیدابادی اول نشست کنار موسرخه که با چشمان خسته و بیحال مرتب میخورد زیدابادی دوم تناب پایش را گرفت و کشید های موسرخه دراز شد و موسرخه چیزی نگفت زیدابادی سوم گفت مانه کجا هستی؟ موسرخه با دهان پر گفت گراش نمه،, نمه، سیدابادی گفت از کجا آمدی؟ موسرخه گفت گراش نمه سیدابادی سببون گفت اسمت چیه؟ مال کدام آبادی هستی؟ از کجا آمدی ای؟ موسرخه چیزی نگفت دهنش را پر کرد و مشغول خوردن شد سیدابادی ها یک دیگر را نگاه کردند. آفتاب افتاده بود و خرمن مثل رودخانه می درخشید و موسرخ افتاده تند تند دهنش را پر می کرد سید آبادی اول گفت یه نفر بره به گدا خانم خبر بده که یکی اومده توی ده که همه چیز را میخوره خوره بکنیم؟ یه نفرم بره نون و پیاز و یه بادیه شله یا آش براش بیاره. دو نفر سید آبادی رفتند و چند دقیقه بعد برگشتند. اولی با یک کیسه نان و پیاز که همه را خالی کرد جلو موسرخه و دومی نفس نفس زنان گفت. گدا خانم میگه این بیاد تو ده، بیرونش بکنین، بلاست، نذارین بیاد توی سید آباد. ها منتظر شدند، موسرخه تا خوراکی ها را خرد و تمام کرد، دست و پایش را گرفتند و سوار اولاغش کردند و راه افتادند، طرف حسنآباد. در حسن چیزی برای موسرخه نبود و دورش را گرفته بودند و با وحشت نگاهش می کردند موسرخه چهار دست و پا می خزید و تناب را هم بدون بال خود روی زمین می کشید آمدند و خم شدند و نگاهش کردند موهای موسرخه به هم چسبیده چشمهایش ورم کرده به هم آمده بود دست و پایش تغییر شکل داده عوض شده بود انگشانش پیدا نبود هرچه گیرش میامد میخورد پیرزنها نان و پیاز صدقه میدادند موسرخه همه را تند تند میبلید کت خدا که او را دید گفت این که آدمی زاد نیست از کجا اومده؟ اسمش چیه؟ کیو بردتش توی آبادی؟ پیرزنها جلوی موسرخه زانو زدند و التماس کردند بیا بیا به خاطر خدا و رسول از اینجا برو بیا از حسن آباد برو موسرخه مثل گورباغه پهن شده بود روی زمین زور میزد که چشمایش رو باز کند و نمی توانست. مردها آمده پشت سرش ردیف شده بودن نقشه می که چگونه دستگیرش کنند و از آبادی بیرونش ببرند همه از موسرخه می و موسرخه تند تند دهانش را باز میکرد و میبست. جانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن. شبیه هیچ حیوانی نبود. پوزش مثل پوزه موش دراز بود. گوشهایش مثل گوش گاو راست ایستاده بود اما دست و پایش سم داشت. دم کوتاه و مسلسیش آویزان بود. دوتا شاخ کوتاه که تازه میخواست از زیر پوست بزند بیرون پایین گوش ها دیده میشد. زور که میزد پلکایش باز میشد و چشمایش که مثل چشمای قورباغه بالا را نگاه میکرد از زیر شاخها پیدا میشد. چند تکه که کهنه از اندامهایش آویزان بود، نشسته بود و گندم میخورد. مشتی بابا گفت: این دیگه چی آمده بیل؟ پسر مشی سفر گفت من که تا بالم توی ایوانی ندیدم اسمایل گفت کفتار نباشه کتخدا گفت نه من سه چهار دفعه کفتار دیدم هیچ وقت اینجوری نبودن پسر مشی سفر گفت میگم موسرخ خودمان نباشه که برگشته تویده. کت کتخدا و مشتی بابا بهت زده نگاهش کردند کتخدا گفت نه بابا موسرخی که اینجوری نبود مشتی بابا گفت آره، صورتش پشم نداشت. پسر مشتی سفر گفت: من میدونم. هر کی میخواد باشه، باید کلکشو کت خدا گفت: من که نمیتونم. مشتی بابا گفت: منم نمیتونم. پسر مشتی سفر گفت: من میتونم. و رفت از پشت خرمنها سنگ بسیار بزرگی آورد. کتخدا و مشتی بابا و اسماعیل پشت کردن به پسر مشتی سفر و چشمی دوختن به آسیاب خرابه که باد میوزید و در شکستش را به هم میکوفت. پسر مشتی سفر سنگ را برد بالا. یک پایش را گذاشت این وره حیوان، پای دیگرش را گذاشت آن وره حیوان، سنگ را ول کرد. جانور میان که صدا بکند روی زمین پهن شد. خون زرد و لزجی از دهانش آمد بیرون. کتخدا و مشتی بابا رفتند آن طرف خرمن ها تا برای لاشه گودال بکنند. موسرخه را کشان کشان از میشو آوردند بیرون. سه مرد قلچماق دوی گاری انداختندش و مرد دیگری یک بغل علف و پوست چقندر ریخت جلو موسرخه. موسرخه پنج شده بود کف گاری، چشمایش باز نمیشد شد. بچه ها جم شده و سنگ می انداختند. موسرخه با دهان پر و چشمان بسته برمیگشت و خورناسه میکشید بچه ها میخندیدند و در میرفتند که را افتاد و از آبادی آمد بیرون آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد موسرخه که چند روز بود چشمایش را باز نکرده بود نفهمید که آفتاب غروب کرده و هوا تاریک شده شب و روز برای موسرخه فرق نمیکرد پسر مشتی عنایت که از صحرا برمیگشت موسرخه را دید که با دهان پر توی آنجاها میخزد و خود را میکشد طرف خاتون آباد. آسته نزدیک رفت و نگاه کرد. خم شد و تناب را که به پای موسرخه بسته بودند گرفت و کشید بالا. موسرخه با کله خوابید روی زمین. پسر مشتی انایت با عجله دوید و رفت دوی ده. با پدرش و میر همزه و دوتا تا خاتون آبادی دیگر برگشت پسر مشتی انایت گفت اونهاش بدر. فکر میکنی چیه؟ از کجا آمده؟ میر همزه خم شد و گفت مال خاتون آباد که نیست مشتی انایت نشست زمین و با دست چشمهای موسرخه رو باز کرد و نگاه کرد یکی از خاتون گفت: ها گفت خدا مشتی انایت خم شد و دوباره نگاه کرد پلکای سنگین موسرخه به هم آمد مشتی انایت گفت آره آره شناختمش من این جوانو یه وقتی تو بیل دیدم میر حمزه گفت کیا آوردنش اینجا پسر مشتی انایت به پاها و دستهای ورم کرده و بدن تغییر شکلی یافته یه خیره شد و گفت حتما خودشون زدن و از ده بیرونش کردن مشتی انایت گفت خیال نکنم بیالی ها هم چو کاری بکنن میر حمزه گفت این حرفا به کنار حالا چه کارش بکنیم؟ وقتی که خودشان نگرش نداشتن ما که نمیذاریم و بال گردنمون بشه پسر مشتی نایت گفت ببریم بندازیمش تو دو بیال مشتیه نایت گفت نه این کار بده خیلی هم بده هرچی باشه ما با بیالی ها نانو نمک خوردیم پسر مشتی نایت گفت پس چرا آنها حرمت نان و نمک رو نمیفهمن و این بلا رو میارن ول میکنن اینجا؟ مشتی نایت گفت خوب اینکه که رسمش نیست شب کنین شب که شد می و برش میکنیم اون حوالی پسر مشتی نایت گفت تا شب چه کارش بکنیم؟ میر همزه گفت ببریمش میدان موسرخه رو بردن توی میدان خاتون آباد بچه ها خبر شدند و آمدند اول با بحت نگاهش کردند ترسشان که ریخت جلوتر آمدند ستار به مشتی عنایت گفت چه شکمی داره هرچی گیرش میاد میخوره مشتی نایت گفت از همینجا معلومه که مال بیله ستار گفت آره آره معلومه که مال کدوم خراب شده است بچه ها موسرخه را دوره کرده بودند آشغالهای های کنار میدان را میکاویدند و هرچه گیرشان میآمد به طرفش دراز میکردند، موصرخه تون تند همه را میگرفت و میبرید. زن های خاتون آبادی با تعجب نگاهش میکردند و پقی میزدند زیر خنده. نزدیکی ظهر بود که موسرخه را پشت خرمنها و کنار آسیاب پیدا کردند. پوزش دراز شده بود. مثل پوزه موش پشمهای سر و صورتش به هم ریخته بود. دست و پایش ورم کرده و کثیف بود انگار که سوم پیدا کرده بود. خلخالهای پایش گلالود بود. زور میزد که چشمایش را باز کند و نمی توانست. چند تکه که کهنه از اندامهایش آویزان بود. اول پسر مشی سفر پیدایش کرد. مردها را خبر کرد همه آمدند. مشتی بابا گفت چه خبره؟ پسر مشی سفر گفت بازم یکی از اونا آمده مشتی بابا گفت یا امام زمان میخوای چه کارش بکنی؟ پسر مشی سفر گفت میرم سنگ بیارم اسلام خم شد و نگاه کرد و گفت نه این موسرخه است موسرخه خودمونه موسرخه که صدای اسلام را شنید آهسته نالید گراسلمه گراسلمه پسر مشی سفر گفت، سنگ نیارم؟ کتخودو گفت، چی میگی؟ میخوای آدم بکشی؟ اسمایل گفت، حیوانکی چه غیافهی پیدا کرده. اسلام گفت، دیگه چیزی از عمرش باقی نمونده. پسر مشی سفر گفت، میخوای بگی که کارامونو ول بکنیم و از این حیوان نگهداری بکنیم؟ اسلام گفت، نه، دلواپس نباش. هیچ وقت نمیذارم تو بیل بمونه. کت خدا گفت، می ببریم سید یا آبادی دیگه؟ اسلام گفت، شما کار به کارش نداشته باشین، من و مشت اسمایل می شهر. مشتی بابا گفت، که چه بشه؟ اسلام گفت، که شما خیالتون آسوده و راحت بشه. و نشست پهلوی موسرخه، دستمالش را باز کرد و دوتا نان در آورد و گذاشت جلو موسرخه. موسرخه، پلکایش را باز کرد که اسلام را نگاه کند. چشمایش مثل چشمای غرباغه جاهای دیگر را نگاه می کرد. موسرخه نمی توانست اسلام را ببیند. موسرخه چهار دست و پا در میدان بزرگ شهر می خزید و جلو می رفت و تنابی را که به مچ پایش بسته بودن به دنبال می کشید. جماعت زیادی دورش کرده بودند بحت زده نگاهش می کردند که چگونه با چشمان بسته خود را روی زمین می کشد و پیش می رود بچه ها پوست میوه و نان و کاغذ باطل و آشغال جلوش می ریختند و موسرخه همه را می بلید. جوان قدبلندی بلندی که وسط جماعت ایستاده بود گفت من دیدم خودم با این چشمام دیدم که از توی فاضلاب در میدونین می دونین؟ از همون جایی که وقتی دوتا جونور گنده گرفته بودن و میگفتن که سگ آبی هستن. زن پیری گفت، نکن از ما بهتران باشه. مردی که کنارش ایستاده بود گفت، خب میگین گین چه کارش بکنیم؟ جوان قد بلند گفت، یه پاسپان صدا بکنیم، دوباره ببردش تو فاضلاب مرد چاق و خمیده ای آمد، جماعت را کنار زد و رفت جلو، پیش موسرخه که رسید خم شد. تله موش بزرگی دستش بود گلاشه چار موش لاغر با دمهای دراز و خشکیده از چار تا خانه تله آویزان شده بود و تکان تکان میخورد دگمه های را فشار داد و چار تا موش یکی بعد از دیگری افتادن جلوه موسرخه